این داستان قازچران روزی روزگاری پادشاهی زندگی میکرد که پسری سیزده ساله داشت و اونو از همه کس و از همه چیز بیشتر دوست داشت. برعکس ملکه با تمام وجودش از اون پسر بیزار بود. پادشاه که مرد این تنفر بیشتر و بیشتر شد. چرا که ملکه نمیتونستش که قبول کنه از فرمان جوانی بی تجربه و چشم و گوش بسته فرمان برداری کنه به این علت نشست و نقشه قتل شاهزاده رو کشید تا از شر اون خلاص بشه ملک ساعتها فکر کرد بالاخره روزی که همه درباریان به شکار رفته بودن و تنها اون و پسرش و سردسته دسته ها توی قصد بودن به سردستهٔ شکارچیا دستور داد تا قلب پادشاه کوچیک رو با خنجر سوراخ کنه اون هم دستور ملکه رو اجرا کرد چرا که میدونست در صورت سرپیچی سرش به باد میره بنابراین با چشمی گریون نوجوان رو کشت جسدش رو روی زین اسبی بست و اسب رو توی جنگل رها کرد اسب سه روز و سه شب توی جنگل سرگردان بود. صبح روز چهارم رو در مقابل قصر پادشاهی ایستاد. شیهای کشید و پاش رو به زمین کوبید. توی اون قصر هفت تا خواهر زندگی میکردند که از خوبی و زیبایی مثل فرشته ها بودند. خواهر بزرگتر با شنیدن صدای اسب از خواهرای دیگه پرسید: چه کسی پیش ما اومده؟ چه کسی راهش به اینجا افتاده و چه کسیه که اسبش سم بر زمین میزنه و شیهه میکشه را کنار پنجره رفتن و به محوتهٔ قصر نگاه کردند جلوی دروازه اسبی را دیدند که روی زینش نوجوونی خونآلود با زخمی عمیق توی سینه بسته شده اونا با دیدن این صحنه صحنهای ناراحت کننده گفتند چه جوان زیبایی لعنت بر کسی که دستش به کشتن اون رفته کاش زنده بود و به برادری قبولش میکردیم. خواهر جان بیا و از نزدیک اون رو ببین خواهر بزرگ کنار پنجره رفت و به پایین نگاه کرد چشمش پر از اشک شد و از خواهر خواست به هر طریق ممکن بهش کمک کنن اونا هم که خیلی مهربون بودن به کمک نوجوان رفتن زخماش رو شستن و با گیاهان جادویی براش مرهم گذاشتند. نوجوان آروم آروم چشمش رو باز کرد و گفت وای تو چه خواب ترسناکی بودم. اون یه روز توی تخت خواب استراحت کرد. روز بعد تونست بلند بشه و راه بره و روز سوم که بهبودی یافت همراه فرشته ها به گشت و گذار رفت. دیگه اون قدر به اون خوش میگذشت که راضی به رفتن نبود. یک سال، دو سال، سه سال و بالاخره هفت سال به خوبی و خوشی کنار فرشته ها زندگی کرد. انگار که توی خونه خودشه. روزی از روزها فرشته بزرگ پیشنهادی داد. اون گفت پادشاه عزیز وقت ازدواج تو فرا رسیده. اگر بخوای میتونی با یکی از ما ازدواج کنی وگرنه این جهان بزرگ رو بگرد و همسر دلخواهت رو پیدا کن. پادشاه جوان گفت: چنانچه حق انتخاب داشته باشم دوست دارم با تو ازدواج کنم و بقیه فرشته ها هم خواهرای من باشن. خواهر بزرگ که از قضا از بقیه خواهر از زیبا تر و متنتر بود. با این خاستگاری موافقت کرد و اون دوتا با هم عروسی کردند. پادشاه جوون سال اول و دوم زندگی مشترک رو به خوبی و خوشی با همسرش گذرند ولی از سال سوم کم کم صبر و حوصلش سر رفت همسرش که ناراحت بود به اون گفت شوهر عزیزم دردت رو میدونم میخوای که از محیط بسته و محدود قصر بیرون بری و آزادانه کوچه ها و خیابونا رو زیر پا بذاری من مخالف رعی و نظرتو نیستم هر جا که دوست داری برو ولی در پایان پیش خودم برگرد فرشته زیبا آخر حرفاش کمی از موهای بافته شدهش رو به شاهزاده داد و گفت وقت سفر هر وقت با مشکلی روبرو شدی روی این موها دست بکش اون وقت می‌بینی که مشکلت حل میشه و آرزوت برآورده میشه شاهزاده جوون با تشکر از همسرش با شش تا خواهرش هم بدرود گفت و روی زین اسب نشست و از قصر هوریان دور شد و به جنگلی انبوه رسید اون جنگل رو زیر پا گذاشت ولی اثری از انسان ندید بالاخره با تاریک شدن هوا توی تاریکی جنگل انبوه قافل گیر شد. شاهزاده جوون جوان از ترس حیوانات وحشی سردر گم و حیران مثل بید می لرزید که یک دفعه به یاد سوی همسرش افتاد. روی اون دست کشید و خونه ی گرم و استبلی مناسب از اون تقاضا کرد. توی چش به هم زدن در برابر چشمش قصری از دل جنگل سر در آورد و استبلی بزرگ هم کنار اون بود شاهزاده جوون قدم به قصر گذاشت افسار اسب رو به یکی از خدمتگزارا سپرد و خودش وارد سالن غذاخوری شد بعد از خوردن شام با خیال راحت در کنار آتیش به خواب رفت با برومدن آفتاب دوباره روی موها دست کشید و گفت که دیگه قصر و استبر رو نمیخواد. توی چشم به هم زدن قصر و استبر محو شد. پادشاه جوون همچنان به راهش ادامه داد تا به شهری رسید که پادشاهی قدرتمند بر اون حکومت میکرد. اسبش رو کنار مهمونخونه ای بست. خودش رو به شکل خدمتگذاری ساده در آورد و به دنبال یافتن شغلی وارد قصر شد. توجه پادشاه به خدمتگذار با وفا جلب شد و اون رو به حضورش پذیرفت. وقتی که فهمید که جویای کاره به اون گفت، به دنبال چه کاری میگردی؟ نوکر و مباشر به حد کافی داریم. استبل دارم داریم. تو تنها میتونی قازهای ما را به چرانی خدمتگزار معدبانه گفت بسیار خوب، اگر کار دیگری نیست من قازا رو به چرا میبرم از اون به بعد شاهزاده در لباس خدمتگزار در اومد و به عنوان قاز چران نامیده شد اون روزا قازا رو به چرا میبرد و شب کنارشون میخوابید. تمام درباریان به لباسای پار پوره و کثیف اون میخندیدن. ولی شاه جوون بیتوجه به نیش زبون دیگران به دنبال هدف خودش بود و دائما این حرف را تکرار میکرد که جوینده یابنده است و جوجه را آخر پاییز میشمارند. تو این زمان تمام محصولات کشاورزی در زیر آفتاب داغ و سوزان خشک شد و چنان خشکسالی مصیبت باری کشور را دربر گرفت که مردم در قحطی و گرسنگی مهیبی گرفتار شدند پادشاه اون دیار برای حل این موزل بزرگ و خانه وزیر مشاور خودش را احضار کرد و گفت سه روز فرصت داری تا راه حلی برای خشکسالی امسال پیدا کنی وگرنه فرمان میدم به جرم ناتوانی در حل مشکلات سرت را از تنت جدا کنند وزیر بیچاره به دست و پای پادشاه افتاد سعی میکرد به اون بفهمونه که در رفع این بلای طبیعی کاری از دست اون ساخته نیست در مقابل پادشاه مستبد اصرار داشت که وزارت برای روزهای بحرانیه وگرنه در شرایط عادی هر کسی میتونه وزیر باشه. وزیر گریان و سردرگم در محووت قصر قدم میزد که ناگهان صدای قازچران رو شنید. ای وزیر چرا این گونه پریشان خاطری؟ اون در پاسخ قاسچران خواسته ی غیر منطقی پادشاه رو بازگو کرد و از اون برای حل این موزل کمک خواست. قاسچران با تبسم گفت حل این موزل بزرگ بسیار آسونه اگر پادشاه دخترش رو به من بده تعهد می کنم تمام مزاره رو توی سه روز کاشت و برداشت کنم. وزیر با عصبانیت فریاد زد تو آدم کل پوکی هستی چه کسی تا به حال تونسته توی سه روز زمین رو شخم بزنه به و برداشت کنه ولی قاضی چران پای حرفش ایستاده بود و ادعا می کرد که اگر از انجام این کار بر نیومد سرش رو از تنش جدا کنند در مقابل چنان چه تونست حرفش رو به کرسی بنشونه و به خوشک سالی پایون بده دختر پادشاه رو به اون بدن وزیر که اصرار زیاد قاسچران رو دید اون رو نزد پادشاه برد و ادعای اون رو بیان کرد پادشاه از سر ناچاری گفت اگر قاسچران موفق به حل این مصیبت بشه به اون پاداش خوبی میدم ولی اگر ادعاش فقط حرف باشه نه تنها سر اون رو بلکه سر تو رو هم از بدنت جدا میکنم وزیر از تهدید پادشاه به خودش لرزید ولی قازچران خون سرد و آروم قازها رو مثل همیشه به چرا برد وزیر پرسید پس شخم زدن رو کی شروع می کنی؟ قاسچران با لبخند گفت که تا شب وقت زیاده و نباید عجله کرد. وزیر حرف اون رو گوش کرد و تمام روز کنار پنجره بیتاب و بیقرار نشست. گویی که بر خارهای بیابون نشسته. هر لحظه از پنجره بیرون رو نگاه می کرد و هر لحظه به دروازه قصر سرک می کشید ولی مزاره کماکان در زیر تیغ آفتاب ترک ترک می شدند. فردای اون روز گیسوی فرشته معجزه کرد و تمام اون سرزمین تا اونجایی که چشم کار میکرد شخم خورده و آبیاری شده بود. قازچران مثل هر روز از جلوی پنجره میگذشت و قازها را به چرا میبرد. وزیر نگران آشفته حال گفت پس کی قصد کاشتن داری؟ قازچران خنده کنان گفت تا شب فرصت زیاد عجله نکن ای وزیر عزیز وزیر با بی صبری در انتظار شب نشست تمام روز به این طرف و اون طرف سر زد و از پنجره محوطه قصر رو زیر نظر داشت ولی مزارع همه خالی بودند و نشونی از کاشتن نبود فردا وقتی از خواب بیدار شد و بیرون رو نگاه کرد با کمال تعجب مزارع رو مثل سالهای پربارون پر از غلات دید در حقیقت این دفعه هم فرشته معجزه کرده بود قاسچران مثل هر روز از مقابل پنجره رد میشد تا قازها رو به چرا ببره وزیر از اون پرسید که کی درو میکنی قاس چران با لبخندی برلب ها را دنبال کرد و گفت، تا شب وقت زیاده و عجله نباید کرد. وزیر در انتظار پایان کار نشسته بود و تمام روز آروم و قرار نداشت. اون مرتب از پنجره بیرون را نگاه می کرد ولی کسی دیده نمیشد. فردا هنگامی که از خواب بیدار شد در زیر پنجره چشمش به یک گاری خورد که پر از کیسه گندم بود. گوئی گیسوی فرشت باز هم کار خودش رو کرده بود. قاسچران تا چشمش به وزیر افتاد از اون سراغ عروس خانم رو گرفت. ولی مشکل مهم این بود که اون به هیچ وجه حاضر به عروسی با چنین آدم جنده پوشی نبود. ولی خاستگار سمج به حدی اصرار کرد که دل پادشاه نرم شد و گفت بسیار خوب. من یه بار دیگه تو رو امتحان میکنم اگر از این امتحان هم موفق بیرون اومدی دخترم رو بیچون و چرا به تو میدم من فهمیدم که تو مرد کامل و با شخصیتی هستی بنابراین همونطور که قول دادم دخترم رو به تو میدم ولی تو باید لیاقت و شایستگی خودت را به اثبات برسونی و گندم ها رو در یک روز به آرد تبدیل کنی در غیر این صورت کلت رو می کنم. قاسچران خونسرد و آروم جواب داد مطمئن باشید که فردا آرد رو به شما تحویل میدم. پادشاه پیر که با نگرانی و دلهوره چشم از اون بر نمی یکی از خدمتگزاران رو به سر آسیاب فرستاد تا اوزار رو زیر نظر داشته باشه. اون با شنیدن گزارش خدمتگزار با خوشحالی دستها را رو به هم مالید. چرا که تمام گندم ها هنوز در انبار بودند و یک کیسه هم آرد نشده بود. ولی فردا، به محصه اون که از خواب بیدار شد وزیر به خدمت اومد و گزارش داد که تمام گندم ها آسیاب شده و قازچران مشغول تحییه مقدمات عروسیه. دختر پادشاه باز هم حاضر نبود با چنین دامادی عروسی کنه ولی شاهزاده جوان اونقدر خواهش و تمنا کرد که پادشاه دلش به رحم اومد و حاضر شد باز هم آزمایشی سخت بر سر راهش بذاره پختن نون برای سربازها در یک روز قاسچران بیچاره باید در این آزمایش هم سربلند بیرون میومد وگرنه سرش به باد میرفت ولی اون با اطمینان قول داد که فردا صفره ها رو پر از نون میکنه پادشاه گیج شده بود و دائما از این اتاق به اون اتاق میرفت و خدمتگذاران رو به نونایی ها میفرستاد. بعد دستاش رو با شادی به هم مالید چرا که یک قرص نون هم پخته نشده بود. صبح فردا پادشاه از خواب بیدار شد و به کارهای روزانه مشغول شد. همون اول کار، وزیر به حضورش اومد و گزارش داد که تمام نون وایی ها مال آمال از نون تازه شده و قاسچران طبق وعده داده شده عروس زیبا رو میخواد. عروس خانم هنوز هم به همسری با مرد چنین ساده و ژنده پوش رضایت نمیداد ولی این بار تسلیم حرف پدر شد و به همسری قاسچران در اومد. عروس در کنار دامادی نشسته بود که لباس دامادی اون همون لباس های کهنه و پینه بسته قاسچرانیش بود. شاهزاده خانم پس از شام به اتاق خودش رفت. قاسچران هم برای اون که اتاق رو با لباس های کسیف و آلودش به هم نریزه شب بخیر گفت و به کنار قاسها برگشت. زمان به همین طریق گذشت تا روزی ارتش کشور همسایه به اون سرزمین حمله کرد و پادشاه مردم رو به دفاع فراخوند. خوند. هم بر اسب چلاقی سوار شد. شمشیر زنگ زده از اسلاح خونه برداشت و به جنگ رفت. هنوز چند قدمی نرفته بود که اسب به چرخ در اومده اون رو در گلولای پرتاب کرد. قاسچرون گفت حالا که من رو توی گلولای انداختی منم توی همینجا میمونم و میجنگم اون وقت با گلولای به ساختن سربازان گلی مشغول شد سربازای پادشاه از روی تمسخور اون رو قهرمان گلی نامیدند ولی اون خم به ابرو نیورد و به کار خودش ادامه داد با ناپدید شدن آخرین سرباز در دل جنگل گیسوی جادویه همسرش را بیرون آورد و به آدمک های گلی مالید. توی چشم به هم زدن اسبی تند پا و شمشیری تیز ظاهر شد و خودش به صورت دلاوری گمنام در کنار پادشاه به صحنه نبرد وارد شد. مثل شیر جنگید و باعث شکست مهاجمان و فرار اونا شد. پادشاه از اون دلاور تشکر کرد و از اون خواست هر چی دوست داره طلب کنه دلاور شجاع بدون افشای هویت خودش از پادشاه انگشت کوچیکش رو خواست پادشاه غرق در تعجب شد ولی کاری از دستش بر نمیومد بنابر این انگشت خودش رو با کارد شکار برید و به دلاور داد دلاور هم با تشکر زیاد سر اسب رو برگردوند و محو شد. وقتی پادشاه با لشگریان به خونه برگشت، بر سر راه قازچران رو دید که کماکان در گودالی پر از گل و آدم گلی می ساخت. با دیدن پادشاه از اون پرسید ای پادشاه بزرگ شیری یا روبا؟ پادشاه خبر خوش داد و اون با یک ضربه شمشیر سربازان گلی رو له کرد و گفت: « من هم پیروز شدم و در این جنگ حتی انگشت کوچیک هم را هم از دست ندادم. روز بعد پادشاه باز هم به صحنه کارزار رفت. قازچران با اسب چلاغش او را دنبال کرد ولی هنوز راه زیادی نرفته بود که باز هم اسب چموش اون را نقش بر زمین کرد. قاسچران مثل همیشه با خنده به استقبال حوادث رفت توی اون محل موند و به ساختن آدمک های گلی پرداخت وقتی همه سربازا از نظر دور شدند دوباره به شکل دلاوری رشید درآمد و سوار بر اسب میدان جنگ شد با ورود اون به جنگ دشمن طعم تلخ شکست رو چشید و فرار را برقرار ترجیح داد پادشاه از دلاور ناشناس تشکر کرد و قول داد در خواسته هاش اقدام کنه. ولی دلاور ناشناس با سپاسگذاری از پادشاه از اون یکی از گوشهاش رو خواست. پادشاه در حیرت از تقاضای عجیب چاقوی شکارش رو گرفت یکی از گوشهای خودش رو برید و به دلاور داد. اون هم بعد از تشکر زیاد سر اسب رو برگردوند و از زیده ها محو شد. پادشاه در راه بازگشت بخونه باز هم قازچران رو توی گودال گلولای دید. قازچران گفت: ای پادشاه با شجاعت، میدونم که توی جنگ پیروز شدی. منم همینطور، ولی من گوش خودم رو از دست ندادم. اون وقت توجه پادشاه و سپاه را به سربازان گلی جلب کرد و با یک ضربه شمشیر سر تمامی اون سپاه ساختگی و قلابی را از تن جدا کرد. روز سوم پادشاه برای آخرین بار بارعازم میدان نبرد شد. قاصچران هم با اسب چلاغ خود به دنبال اون به راه افتاد. این بار هم مثل دفعات پیش هنوز مسافت زیادی نرفته بود که اسب اون رو به گل انداخت. قاسچران چران صبر کرد تا سربازا از نظرها دور شدند. اون وقت خود را به شکل دلاوری رشید در آورد و به دنبال پادشاه به راه افتاد. اون تو صحنه نبرد آنچنان رشادتی از خود نشون داد که دشمنان سرکوب شدن و با تحمل شکستی سخت اغب نشینی کردن پادشاه با تشکر از دلاور نامدار و گمنام از اون خواست تا هرچی دوست داره طلب کنه اون هم با کمال تعجب بینی پادشاه رو خواست پادشاه هم که وفای به عهد پیشه کرده بود کاردش کار رو به دست گرفت و بینی خودش رو برید و به اون داد پادشاه و همراهها در راه بازگشت بخونه باز هم قازچران رو در گودالی پر از گلولای مشاهده کردند. کردم. قاسچران با دیدن اونا گفت ای پادشاه میدونم که در جنگ با دشمنان پیروز شدی. من هم توی این نبرد سربلند بیرون اومدم. با این تفاوت که تو توی این کارزار بینی خودت رو از دست دادی و من هیچی از دست ندادم. اون وقت، با شمشیر زنگ زده خودش تمام سربازان قلابی و گلی رو تارمار کرد. در پایان جنگ شبی در قصر پادشاهی جشن مفصلی به خاطر پیروزی در جنگ برگزار شده بود. تمام سرداران دور میز نشسته بودند و از فتوحات خود و قنیمتهایی که به دست آورده بودند حرف می زدن. در این میان، تنها جای دلاور ناشناس خالی بود که به جای اون در طرف راست پادشاه دامادش یعنی قاسچران حضور داشت وقتی هر یک از حاضران گزارش رشادت ها و قنیمت های به دست اومده را ارائه کردن اون هم رشته کلام را به دست گرفت اون گفت از قنیمت های گفتید؟ که قنیمت های معمولی هستند و دسترسی به اونها آسونه ولی هیچکس کس نتونسته به قنیمت هایی که من به دست آوردم نایل بشه. تمام مهمون ها با شنیدن این حرف به خنده افتادن و از قنیمت های کسب شدش پرسیدن. قاسچران یعنی داماد پادشاه انگشت کوچیک پادشاه رو نشون داد و گفت ببینید این رو من روز اول به دست آوردم. بعد گوش پادشاه را عجیبش در آورد و گفت این رو روز دوم به قنیمت گرفتم. اون وقت مینی پادشاه را به همه نشون داد و گفت این هم روز سوم جنگ حاصلم شد. در این لحظه پادشاه و همه حاضران در مهمانی انگشت به دهان دلاور ناشناس رو شناختن. پادشاه جوون، دلاور ناشناس، قاصچران و داماد پادشاه بلند شد و با لباسهای کهنه و وصل دارش در برابر پادشاه تعظیم کرد و گفت فهمیدم که اندیشه و جان آدمی با ارزشتر از لباس زیبای اونه. حال تمام پاداشهای شما و دخترتون رو به شما بر چرا که همسر حقیقی من در انتظارم لحظه شماری میکنه. اون سپس دستی بر گیسو کشید. در یک آن گوش، بینی و انگشت بریده شده پادشاه به جای خودش برگشت و شاهزاده خانم باز هم به وسال پادشاه دلخواهش رسید. شاهزاده قاسچرانان سوار بر اسب با وفای خود، از دروازه قصر پادشاه بیرون رفت و راهی سرزمین هفت فرشته شد اون دیگه به این جهان پا نگذاشت و کسی از حال و احوالش با خبر نیست سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه بستههایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،